Oh نا ما نه بابا نمیاد نه ادبی حمبارم گفتم نمیاد هی حالا تو بشین اینجا انتظار بشه. بابا گفت میام گفت دکترش گفته بعد روزی نیم ساعت بی پرش کدم بزنه دادت بابا من میدونم ولی حال میده ها چی حال میده اینج منتظرش باشی آخه تو سرت یارو کاشتتش داره حال میکنه من جوانی همین همینجوری بودم به خود خدا خدا بده بابا ما بریم سر قلال ببین بودی ما پای دکتر ورا داره داره ما چی فکردی فکر چقدر آخه <تصفح> دختر جوون ریخته تو رو ببینه کی فرار میکنه کی؟ همون دیگه ریختمو نمیبینه که چی میگی تو من نمیفهمم ببین من میرم با دختر تو تلگرام دوست میشم اون تا عکسم عکس شاهرخ شاهرخ نوره آره دیگه ماشاءالله عین جوونیهای خودم خوشتیپ و خوشقد و باالا بالا عکس اون چه دخل به تو داره می‌ری قرار یارو می‌بیند که نه دیگه من میرم اونجا می‌بینم دخترهای اون مایونون مونده لشکر سچ می‌شه داد و یه برای پدرت پیت می‌رم که من نصیاتش می‌کنم که <تصفيق> <خوب> نصیاتش <میکنه تصفيق> چی جیرت میاد به همین ده اگر من کمیش دم می‌میرم چطور نیاوری از معرف <تصفيق> تو دانش درمان هست آشفت میشه آقا با خواست سری تو چه انس تو هپرنت چی دفن این داره زمین آخر جنی کلان می‌ری سریشون بالا که میره دود از کند پا م شپیر بابا. چایدی بابا حالت خوشنی نیست من میام سر قرار تا همینجا با این کلاق ملاقه بشینه انتظار بکش ما رفتیم خدا بر بابا برو به خیالاتش برید بزر من به انتظارمون برسیم نیمت چرا پسه حالش بعد نشده باشه میگم میگفت اورش رفته بالا جدیدن هایش تنین دردن دشتن منم تفمه